خب بسم الله الرحمن الرحیم حکمی دیگر از عددها کجا رخیم؟ بالد درس بعدی تعریفه تعریفش جاء صبعه طلبتی اشتریتو ثلاثمئتی البرتقالتی انفقنا في بناء المنزل ستة آلاف الجنيش کن مشکلی نیست حقیقی نیست قبیلنا ستا عشره امسال گروه دوم يه روز باوسوانه اللقن السلاتة. عشرة صورتا اوقت الخمسة والسلاثین مصباحا اتعمت الاربع والعشرین دجاجتا ي قایده برای این آورده توضیح شده میگه اذا اريد تعریف عدد بان زمانی که خاصه بشم معرفه عدد ووسیله الفلان تعریف یعنی معرف گرداندن عدد به وصیله فان کان انکان ادخلت عل علی المضاف اله اگر عدد مضاف بود علی فلان بر چی می آید؟ علی فلان بر مضاف اله می آید مانند گروه مثال گروه اول جا از سبعت و الیفلام رو به جاییم که از سب عبده به چی داده؟ بله پس دقیقت داشته باشید احکاماتی رو در مورد معرفه بودن این عدد توضیح میده میگه زمانی که عدد مضاف بود عدد چی بود؟ مضاف بود و میخواستیم اونو معرفه کنیم الیفلام بر چی میاید؟ مضافله. بر مضافله میاد مانند جاعت سبعتوط سب طلبتی که بر از طلبه اومده و امکان مرکبا اما اگر عدد مرکب بود عدد چی بود؟ مرکب بود ادخلت علا صدریه علفلام تعریف بر صدرش وارد میشه بر وارد میشه؟ مانند قبیل از ستت اشرا یومن به اصوانه مانند چی؟ قبیل از ستت اشرا یومن به اصوانه الکلام روی صدر آورده یا روی اجز روی صدر که از بله این حکم دومی هست وإن كان معطوفا ومعطوفا عليه أما اذا عدد معطوف ومعطوف عليه معناها مثال امثله گروه سهم بيعيد اوقدت ال35 اوقدت الخمسة 35 أو إجا معطوف ومعطوف عليه انذا تشكوار ميكورين ادخلت على الجزئين الف لام بر هر ماننده اوقات تو الخمسته و سلافینه هم خمسه الفلام داره هم چی؟ سلافینه پس این در این درس چیز خاصی نگفت چیز جالیو گفت ولی منظورم چیز پیچیده نگفت گفت موقعی که شما میخواستید یک عددی رو چیکار کنید؟ معرف کنید معرفش کنید این کلمه تعریفهو تعریف آن یعنی معرفه کردن آن نه این که اومده عدد رو تعریف کنه یه روزی منظورتون از تعریفه منظورش این نیست که اه اه اه اه این تعریف اصطلاحی که بیاد اونو تعریف بکنه بلکه معرفه گرداندن آن یعنی زمانی که شما میخواستید اونو معرفه کنید چه احکاماتی داره پس زمانی که مضاف باشه مض... الپلامو به مضافون اله میدهیم زمانی که مرکب باشه جز اولش رو و زمان که معتوف و معتوف اله باشه الفلام رو به هر جز میدهیم بله اما بریم به درس به قاعده بعدی